داستان گوتو، فرمانروای خشکی و دریا در روزگاران قدیم، پادشاهی زندگی میکرد که دو تا همسر داشت. نام اولی یاورو و نام دومی دنیاوو بود. اما خدا به هیچ کدوم از اونا فرزندی نداده بود. سالها گذشت، پادشاه کم کم احساس نگرانی کرد. او مرتب از خودش میپرسید بعد از مرگم ثروت و داراییم و برای چه کسی باقی بذارم؟ پادشاه تو کوچه پسکو شهر را میرفت و با حسرت به بچه هایی که با پوستای قهوهی و آفتاب سختشون بازی میکردن نگاه می کرد. وقتی میدید اونا با صدای مادرشون به طرفش میدونن افسوس میخورد و آه می کشید. حتی یکی دو بار اونا رو قانه کرد که سرپرستی فرزندشون رو به اون بسپرن اما افسوس که هیچ کدوم از بچه ها مدت زیادی زنده نموندند. هر کدوم توی حادثه ای یکیشونو یه مار سمی نیش دیگه آبله گرفت و مرد. سوامی هم که کودک بازی گوشی بود. یه روز وقتی از درخت بالا میرفت به زمین افتاد و مرد. به همین دلیل دیگه هیچ کس حاضر نبود فرزندش رو به پادشاه بسپره. همه با خجالت و احترام تقاضای اونو رد رد می‌کردن. کسی هم نمی‌تونست اونا رو مجبور کنه چون نگران سلامتی بچه هاشون بودن. در زمانی که پادشاه همه امیدش رو از دست داده بود که فرزند و وارسی داشته باشه همسرش دنیاوو پسری به دنیا آورد. کودکی زیبا و دوست داشتنی. اسمشو گوتو گذاشتن. با تولد اون اندوهی که پادشاه همیشه از دیدن بچه های دیگه داشت جاش به شادی داد. با گذشت زمان گوتو یک کودک شجاع و باهوش شد. مهرش تو دل همه جا گرفت همه به جز یاورو تولد گوتو و مهری که همه به اون داشتن باعث حسادت یاورو به اون شده بود همیشه سعی می کرد رو از دیگران مخفی کنه و اونو به کسی بروز نده اما وقتی که گوتو حدودن دوازده ساله شد در وازبان قصر یاورو رو دید که یه گوشهی نشسته و گریه میکنه. دروازبان جلو رفت و گفت شما چرا باید گریه کنید شما همسر پادشاه هستید و هیچ چیزی در زندگی کم ندارید ثروت کافی و غذای کافی این منم که باید گریه کنم یا ورو اشکاشو پاک کرد و پرسید مگه تو چه مشکلی داری مرد جواب داد من تمام روز و کار می کنم و شب هم برای به دست آوردن یک پول ناچیز بیدارم. زنم بیمار بیماره و بچه هم همیشه گروسنن. اما درد من برای هیچ کس اهمیتی نداره. باور کنید حاضرم هر کاری بکنم تا یه مشت از ثروت شما رو داشته باشم با شنیدن این حرف یه فکر شیطانی به یا یاورو رسید. اون رو به دروازه کرد و پرسید، حاضری در برابر کیسه از سکه های تلا کاری برای خوشحالی من انجام بدی؟ دروازبان جواب داد، حاضرم برای مقداری طلا دست به هر کاری بزنم. یاورو مرد و به پشت بوتهی برد و گفت گریه من به خاطر اینه که بچهی ای ندارم. وقتی میبینم همه به گوتو علاقه دارن ناراحت میشم.» دیگه تحمل ندارم که اونو تو قصر ببینم. از تو میخواهم اونو به جنگل ببری و بکشی. اگه بتونی این رو انجام بدی، پاداش خوبی به تو خواهم داد. در فوزبان تمکار قبول کرد و روز بعد با نیرنگ گوتو رو تشویق کرد که با اون برای شکار به جنگل بیاد. گوتو با شادی گفت دلم میخواد هرچه زودتر به اونجا بریم تا بتونم قزالایی که تو دربارشون برام حرف زدی شکار کنم. دروازهبان گفت عجله نکن، وقتی آفتاب تلوک کنه راه می اما فراموش نکن که نباید غیر از من و تو کسی از این راز با خبرشه. شه چون میخوام پدر و مادرتو با اون همه شکاری که می کنی قافل گیر کنم. روز بعد گوتو و دروازه تیرو و رو برداشتن و به طرف جنگل به راه افتادن. چتری از مه روی زمین و پوشنده بود و خورشید تو پایینترین نقطه آسمون بود. مرد سعی کرد پسر رو دور از روستاهایی که در اطراف شهر بودن به جنگل ببره. چون از این میترسید که یکی از نزدیک پادشاه اونو بشناسند. اونا توی جاده باریک و ماسیع که پوشیده از های سبز بود آروم قدم بر برمیداشتند سکوت همه جا رو گرفته بود فقط گاهی صدای کبوتر یا فریاد میمونی این سکوتو میشکست گوتو چند بار از دروازبان پرسید هنوز نرسیدیم مردم جواب میداد اگه کمی صبر کنی به جای می رسیم که های زیادی هست وقتی به اندازه کافی از خونه دور شدن و به دره امیق و گستردی رسیدند، مرد ایستاد و گفت همینجاست و گوتو رو آروم به پایین دره برد. بعد گفت راه طولانی ما رو خسته کرده بیا اول کمی استراحت کنیم و بعد به سراغ شکار بریم. گوتو فوری به خواب رفت. مرد با خودش فکر کرد که این بهترین فرصت تا گلوی پسر رو با چاقو ببره، اما هر چی سعی کرد نتونست خودشو راضی کنه. واقعیت این بود که اون با اینکه که تمکار بود، اما دلش راضی نمیشد که به گوتو آزاری برسونه. مرد از جاش بلند شد و آرام از اونجا دور شد و گوتو رو که توی خواب امیقی بود همونجا رها کرد. وقتی که دروازه به قصر رسید یا در انتظارش بود. مرد جرعتش نداشت که حقیقت رو بگه برای همین گفت همه چیز رو به راهه. گوتو مرده و شما دیگه هرگز اونو نخواهید دید. بعد از گرفتن پاداشش با عجله به خونه و پیش خونوادش رفت. روز بعد جنجالی در قصر بپاشد. گوتو کجا بود؟ هیچ کس اونو ندیده بود. مادرش با اندوه میگفت مطمئنم اتفاق بدی برای پسرم افتاده چون دو شب قبل تو خواب دیدم که جنازه اون نزدیک دروازه شهر افتاده. پادشاه هم مثل همسرش آروم و قرار نداشت. اون به خدمتکارانش دستور داده بود تا تمام شهر رو بگردند. خدمتکارا به هر نقطه که ممکن بود سر زدن و از هر کس که می سراغ گوتو رو می گرفتن اما هیچ کس اونو ندیده بود. پادشاه صد کیسه ی خرمهره برای کسی که خبری از پسرش به اون بده تعیین کرد. اما هیچ کس خبری از اون نداشت. عاقبت پادشاه غمگین و افسرده یه گوشه نشست. همسرشم تمام روز و شبا تو غم از دست دادن فرزندش گریه زاری میکرد. اما بشنویده از گوتو. اون بیخبر از همه جا بعد از مدتی چشاشو باز کرد. وقتی جای دروازه بانو خالی دید با عجله بلند شد و اونو چند بار صدا زد. اما هیچکس به اون جوابی نداد. گوتو با خودش یقین کرد که مرد با حیوان وحشی رو برو شده و در مبارزه با اون جونش رو از دست داده. گوتو چاره ای نداشت جزیم اینکه فکر شکار رو از سرش بیرون کنه و راه خونش رو پیش بگیره. اما هرچی چی رو نگاه کرد و این طرف و اون طرف رفت راه و پیدا نکرد. بالاخره شب شد. گوتو چند تا شاخه از درختو کند و روی زمین چید. بعد روی اون به خواب رفت. اون شب گوتو یه رویایی دید که مثل واقعیت بود. برای همین وقتی که بیدار شد، تمام حرفا رو مو به مو یادش بود. اون تو خواب دید که شبهی کنارش ایستاده و به اون میگه پسرم به طرف شهر حرکت کن. اونقد برو تا به رودخونه ای برسی. اونجا کنار رودخونه با صدای بلند فریاد بزن کابل، کابل، کسی به تو جواب خواهد داد. اگه کارایی رو که از تو میخوام انجام بدی، عاقبت خوبی خواهی داشت. گوتو روی بستر برگیش پهلو به پهلو شد و به رویایی که دیده بود فکر کرد. وقتی اولین شعای خورشید از پشت کوها بیرون میزد و به نور صورتی کمرنگی تبدیل شد، گوتور راهشو به طرف شرق پیش گرفت. مدت زیادی نکسش که به یه رودخونه پهنی رسید. کنار رودخونه ایستاد و فریاد زد، کابل، کابل، ناگهان سطح آب به هم خورد و یه موجی تون پدید اومد. از زیر آب یه پری زیبا سرشو بیرون آورد و، رو اون استاد. پری دستشو به طرف اون دراز کرد و گفت با من به زیر آب بیا گتو لحظه سب کرد اما به یاد آورد که تو رویاش به اون گفته شده بود که هر چی که به اون میگن گوش کنه پس داخل رودخونه شد و دست پری و گرفت زیبایی دنیای زیر آب اونو شگفت زده کرده بود گوتو از اینکه که می دید زیر آب همون اندازه راحته که روی خشکیه تعجب کرده بود. پری اون از لابلای سخرها و علفهای دریایی عبور داد و خودش تو طول راه ساکت و آرون بود تا اینکه توی پیچی در بستر رود به شهر زیبایی رسیدند دختر لبخند زد و گفت اینجا پای تخت فرمان پدرمه. دخترونو به سمت قصری که از سنگای خاکستری ساخته شده بود راهنمایی کرد جایی که پادشاه اونجا در میان مشاورانش نشسته بود بیا به اون سلام کن پادشاه از دیدن گوتو خوشحال شد و به خدمتکارانش دستور داد تا بهترین اتاق قصر رو براش آماده کن بعدم دستور داد یه جشن باشکوهی برپا بشه گوتو از اینکه در بین مردم دهکده رودخونه بود، راضی و خوشحال بود. وقتی اون برای پادشاه از ماجرای زندگیش گفت، پادشاه از اون خواست تا هر زمانی که میخواد پیش اونا را بمونه و مطمئن باشه که با اون مثل پسر خودش رفتار خواهد کرد. سالها گذشت و گوتو اونجا بزرگ شد. حالا دیگه اون مرد جوان و برومندی شده بود. همه به اون احترام میذاشتن و دوستش می‌داشتن و شجاعت اون زبان همه بود. وقتی که اعلام شد، اون قصد داره که با شاهزاده کابل ازدواج کنه، شهر لبریز از شادی شد. مراسم ازدواج اونا هم با شکوه و شادی بسیاری برگزار شد. جشنی که هیچ کس تا اون روز تو اون سرزمین ندیده بود. کابل یکی از زیبا ترین عروسایی بود که تا اون روز دیده شده بود. گوتو نمیتونست چشم از همسر زیباش برداره. پادشاه هم که از این وصلت بسیار شادمان بود نیمی از کشورشو به اون داد. گوتو و کابل زندگی مشترک خودشونو تو قسمتی از قصر که مخصوص اونا ساخته شده بود شروع کردند. شادی اونا کامل بود هر روز عصر، گوتو و کابل تو حاشیه رود حرکت می تا به جایی که سالها پیش برای اولین بار همدیگر اونجا دیده بودن می رسیدن. اون وقت ازا بیرون می اومدن و تو حاشیه سبز کنار رودخونه راه می و از هوای خنک عصر لذت می بردن. یه روز پادشاه تو به سر بیماری افتاد. هیچ درمانی حال اونو بهتر نکرد. چند روز بعد کشور تو عزای اون که پادشاه مهربون و محبوبی بود فرو رفت همه به خوبی میدونستن که گوتو بعد از اون پادشاه میشه چون تو این چند سال به خوبی تونسته بود لیاقتشو نشون بده گوتو و کابل پادشاه و ملکه شدن و با عقل و کاردانی کشور رو اداره کردن اما کم کم گوتو تغییر کرد اون دیگه خوشحال و راضی نبود گاهی وقتا که اسرا با کابل کنار رودخونه میرفت به اون می گفت منم میخوام پدرم و قبل از مردنش ببینم نمیدونم اون هنوز منو به یاد داره یا نه کابلم به او می گفت ما همدیگه رو داریم و به یکدیگر علاقه من دیم تو که نمیخوای منو ترک کنی و به دنبال کسایی بری که شاید تا به حال فراموشت کرده باشن اما گوتو نمیتونست فکر دیدار دوباره پدرشو پدرش رو از سرش بیرون کنه. اون به همسرش قول داد که بعد از هفت روز به خونه برگرده. کابل به اون گفت، حق داری من نباید تو رو بیشتر از این اینجا نگه دارم. چون خواسته ی من باعث آزار توه. اما منم تحمل دوری تو ندارم. پس منم همراهت نیام تا پدر تو ببینم. گوتو از اینکه میدید همسرش احساس اونو درک میکنه خوشحال شد اما به اون گفت من راه بازگشت به خونه پدرم نمیدونم. کابل گفت نگران نباش ما میتونیم از اسب چوبی پدرم کمک بگیریم. اون تا آخر دنیا سفر کردی. فقط کافیه اسم کشور پدرت رو در گوشش بخونیم. اون خودش به طرف اونجا پرواز میکنه. همه ی مشاوران و مردم کشور برای بدرقه و خداحافظی با اونا بیرون قصر جمع شده بودند. گوتو و کابل سوار بر اسب شدند و نام کشور گوتو رو تو گوش اون خوندن. اس بالا و بالاتر رفت و عذاب بیرون اومد و تو هوا پرواز کرد. وقتی بعد از مدتی گوتو زیر پاشو نگاه کرد فریادی از شادی کشید چون شهری رو که تو اون بزرگ شده بود و قصر پدرش رو که هنوز پا بر جا بود دید. اسب آروم پشت دروازه های شهر به زمین نشست. گوتو با صدای بلند به دروازه شهر کوبید و با شگفتی دید همون دروازه بان که تو کودکیشون رو به جنگل برده بود سر کاره. مردون رو نشناخت و از اون پرسید چه میخوای؟ گوتو جواب داد میخوام با پادشاه ملاقات کنم. برای اون خبر خوشی آوردم. مرد گفت پس باید اول خبر تو به من بگی تا من اونو به پادشاه بگم. گوتو گفت نه من باید خودم این خبرو به اون بدم. برو به اون بگو غریبه ای به نام یا اوتو تقاضای ملاقات با اونو داره. دروازبان فریاد زد از اینجا برو و دیگه دروبر قصر پیدا نشه. مطمئن باش اگه یه بار دیگه این اصراف ببینمت، پوست تو میکنم. تو لیاقت صحبت با پادشاه و نداری. بعد دستشو بالا ورد تا ضربهی به گوتو بزنه اما کابل جلو اومد و دست مردو نگه داشت و آرام گفت شرم کن. تو خدمتگزار پادشاهی. چطور به خودت اجازه میدی به شخصی که میخواد با سرورش صحبت کنه بگی که چنین حقی نداری. برو و کاری رو که از تو خواسته شده انجام بده کابل چنان با اطمینان صحبت کرد که مرد به داخل قصد رفت تا پیغام و به پادشاه برسونه. اما بوی غذایی که از آشپزخونه می اومد، اونو به طرف دیگهی کشوند و باعث شد تا معمولیتش رو به کل فراموش کنه. بعد از مدتی در حالی که ساقه به دندون داشت، برگشت و دید زن و مرد جوون هنوز پشت دروازه به انتظار دیدن پادشاه ایستاده. ناگهان یادش اومد که چرا به قصد رفته بوده؟ از مستخدم قصد پرسید پادشاه از خواب نیمروزیش بیدار شده؟ خدمتکار با لحنی بیادبانه گفت نه هنوز خوابیده و مشغول خور رو کردنه. دروازبان به طرف گوتو و کابل رفت و گفت پادشاه هنوز خوابه و کسی جرأت بیدار کردن اونو نداره. اما اگه شما به من انعام خوبی بدید شاید وقتی که بیدار شد پیغامتون رو به اون برسونم. گوتو که از این حرف مرد خیلی خشمگین شده بود خاص به حساب اون برسه اما همین موقع سگ پیری به طرف دروازه شهر اومد و یکی دو دقیقه هوا رو بو کشید. بعد از شادی پارسی کرد و به طرف گوتو اومد. بعدم شروع کرد به لیسیدن دستای اون. دروازه بان گفت عجیبه. این سگ پیر تا به حال با هیچ ای دوست نشده. گوتو سگو نوازش کرد و با اون حرف زد. اون این سگو از وقتی که طول سگ کوچیک بود میشناخت. اون آروم حلقه و از دستش در و تو تکه پارچه‌ای پیچید و دور گردن سگ گره زد. چند کلمه تو گوشش خوند و به پشتش زد. حیوون دویید و به طرف قصر رفت. دروازهبان گفت حالا این همه دردستر برای چی بود؟ گفتی اسم چیه؟ گوتو جواب داد یه بار گفتم یا اوتو از تو خواستم پیغامم رو به پادشاه برسونی اما حالا میبینم که بهتر خودم کاری بکنم مطمئن باش چیزی نمیگذره که اتفاقی دور از انتظارت روی خواهد داد تو همین گیرو دار سعی به طرف اتاق پادشاه رفت و با لیسیدن صورت اون از خواب بیدارش کرد. چشم پادشاه به بسته افتاد که دور گردن سگ گره زده شده بود. با عجله پارچه رو باز کرد و ناگهان یه فریاد بلندی کشید. چون داخل اون حلقه رو که تو کودکی به پسرش داده بود پیدا کرد. یکی از درباریا به طرف اتاق پادشاه دوید تا ببینه چه اتفاقی افتاده. با تعجب دید پادشاه تو تختش نشسته و اشک از چشمانش جاریه. مرد پرسید: قربان چه اتفاقی افتاده؟ دنیا و همسر پادشاه هم وارد اتاق شد. پادشاه انگشتر رو به اون داد و گفت همسر عزیزم آیا این حلقه رو قبلا دیده بودی؟ زن فریاد زد بله این انگشتر پسر عزیز از دست رفتمونه اما چه کسی اونو به تو داده؟ چطور به دستتو رسیده؟ پادشاه رو به درباریانش کرد و با عجله گفت به تمام محافظا دستور بدید هر چه سریتر کسی رو که این انگشتر رو به گردن سگ گره زده پیدا کند. وقتی پیداش کردن دستگیرش کنن و پیش من بیارند. چیزی نگذشت که خبر سراسر قصر پخش شد و دروازبان بلا فاصله گوتو و کابل رو به سربازا معرفی کرد. اونا بدون تلف کردن وقت، اون دوتا رو دستگیر کردن و پیش پادشاه بردن. پادشاه تو سرسرای بزرگش بین حلقی از مشاوران نشسته بود. پادشاه پسرش گوتو رو نشناخت چون وقتی اونا از دست داده بود، گوتو فقط دوازده سالش بود. پادشاه پرسید مرد جوان اسم چیه؟ اینجا دنبال چه کاری هستی؟ گوتو جواب داد نامم یا اوتوه و میخوام با پادشاه تنها صحبت کنم. پادشاه از این هفت شگفت زده شد اما از اونجایی که از چهره اون جوان و اون دختر زیبا خوشش اومده بود یه تمام مشاوراش دستور داد تا از اتاق خارج شن و فقط همسرش تو اتاق باقی بمونه. گوتو مادرشو هم شناخت با اینکه اون پیر شده بود. گوتو به پادشاه تعظیم کرد و گفت قربان، صاحب این حلقه من هستم. من همون پسر شما هستم که این حلقه رو به اون دادید. دنیاوو گریه کنان به طرف اون دوید و به پادشاه گفت بله، اون پسر واقعی ماست که از دنیای مرگ برگشته. گوتو لبخندی زد و گفت از مرگ نه، از حکمرانی رودها. من همسرم رو هم با خودم اووردم. زوج پیر با شادی پسرشونو در آغوش کشیدن و پسر تمام ماجرا رو از اول تعریف کرد. پادشاه دستور داد تا جشن بزرگی برای اومدن پسر و عروسش ترتیب بدن. تمام دوستا و همبازیای کودکی گوتو هم به این جشن دعوت شدن. اما بانو یا یاورو همسر حسود پادشاه برای همیشه اون شهر رو ترک کرد. مردم از اینکه که می دیدن گوتو به کشور برگشته بسیار خوشحال شدن و کابل را هم به خاطر حوش و داناییش بسیار دوست داشتن. وقتی چند سال بعد پادشاه مرد، گوتو به جای اون حکمرانی کشور رو به دست گرفت و با ادالت و هوشیاری اونو اداره کرد. اما سرزمین زیر آبها رو هم فراموش نکرد. اونا به کمک اسب پرنده، موفق به اداره هر دو سرزمین شدند. همه مردم اونا رو دوست داشتن و از اونا راضی بودند. غوتوب و کابل تا آخر عمر با خوشبختی زندگی کردند. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها. قصه از غول ها و کوتوله ها